روزی، روزگاری، پادشاهی همیشه در حال جنگ با همسایهاش بود و این خیلی عجیب به نظر می رسید چون اون مرد مهربونی بود که به داشتن سرزمین خودش قانه بود و نمی خواست زمین دیگران رو تصاحب کنه شاید اون بیش از حد سعی کرده بود تا به میر دیگران رفتار کنه و این مسئله باعث نارضایتی همه می شود. اما در هر صورت اون در پایان یک نبرد دشوار شکست خورد و مجبور شد به پشت دیوارهای پایتختش تختش عقب نشینی کنه. به محض رسیدن به اونجا شروع به انجام تدارکات لازم برای دوران محاصره طولانی کرد و اولین نقشش هم فرستادن همسرش به مکان امن بود. ملکه که همسرش رو خیلی دوست داشت میخواست باش بمونه تا در خطراتی که اون رو تهدید میکنه سحیم باشه اما پادشاه اجازه نداد به این ترتیب اونها با گریو و زاری از هم جدا شدند و ملکه همراه با محافظی نیرومند عازم قلعه مستحکمی در هاشی یک جنگل بزرگ که دویست کیلومتر با اونجا فاصله داشت شد اون تقریبا تمام راه رو گریه کرد و وقتی به مقصد رسید بازم خیلی بیشتر گریه کرد چون همه چیز توی قلعه خاکالود و کهنه بود و بیروز از اون فقط یک حیات سنگفر شده قرار داشت. پادشاه اون رو از رفتن به اون طرف دیوارها من کرده بود، مگر اینکه حداقل دو سرباز برای محافظت از جونش اون رو همراهی کنند. اونها همش چند ماه پیش عروسی کرده بودند و ملک عادت داشت توی قصر خودش بدون محافظ روی تپا راه بره و اسب سواری کنه و به خاطر محدودیتی که براش پیش اومده بود خیلی دلتنگ بود. به هر حال اون مدتی طولانی این وضع رو تحمل کرد چون خواسته پادشاه بود. اما با گذشت زمان وقتی که جنگ به اون سمت کشیده نشد، ملک جسارت بیشتری پیدا کرد و گاهی وقتها در اون طرف دیوارهای قلعه در جهت جنگل میگشت بعد دوران نگران کننده پیش اومد و هیچ خبری از پادشاه نشد. دختر بیچاره که فقط 16 سال داشت با خودش فکر کرد حتما بیمار شده یا مرده. دیگه نمیتونم تحمل کنم. اگه به زودی نامی ازش دریافت نکنم این محل ترسناک رو ترک میکنم و میرم تا ببینم چه خبر شده. ای کاش هرگز از اونجا دور نمیشدم. و به این ترتیب بدون آشکار کردن قسطنیت خودش دستور داد کالسکه کوچکی شبیه سورتمه یا دوچرخ که برای حمل یک نفر کافی بود براش بسازند اون به ملازمانش گفت از موندن توی قله خسته شدم میخوام کمی شکار کنم و بعد با دیدن نگرانی در چهره اونها اضافه کرد البته به همین نزدیکی ها میرم دلیلی هم نداره که شما هم به شکار نرید چهره همه اونها با شنیدن این جمله از شادی درخشید آخه اونا هم مثل بانوشون خسته و دلتنگ بودند ملکه به میر خودش رفتار کرد و دو اسب زیبا رو برای کشیدن سرط میگه کوچیک از استبل آوردت اول ملکه همون از دیکی ها شکار میکرد اما کم کم دور و دورتر رفت تا اینکه سرانجام یک روسو با مشاهده یک گراز وحشی فرصت مناسبی پیش اومد چون همه درباریان بلافاصله دنبال اون حیوان رفتند و ملکه مسیری خلاف جهت اونها رو در پیش گرفت بدبختانه این جاده به قصر پادشاه که ملکه قصد رفتن به اون رو داشت منتعی نمی و ملکه از آشکار شدن ماجرای فرار خودشم خیلی می ترسی. اونقدر به اسباش تازیانه زد که رم کردند و وقتی که ملکه فهمید که چه اتفاقی افتاده خیلی وحشت زده شد و در حالی که افسار رو رها کرده بود به بدن یه سرطمه چسبید به همین خاطر اسبها که به حال خودشون رها شده بودند کورکورانه به درختی برخورد کردند و ملکه بر زمین افتاد و بیهوش شد. اقبت صدای خشخشی درون نزدیکی ها ملکه را به خودش اوورد. مقابلش زن عظیم و ایستاده بود که لباسی بر تن نداشت و پوست شیری رو بر شهاش انداخته بود و پوست خشک شده یک مار هم در بین موهاش قرار داشت در یک دست اسایی داشت که به اون تکیه داده بود و در دست دیگرش تیردانی پر از تیر قرار داشت با مشاهده این موجود عجیب ملکه تصور کرد که مرده و داره به یکی از ساکنان عالم دیگه نگاه میکنه به همین خاطر زیر لب گفت تعجب نمیکنم که مردم اینقدر از مردن نفرت دارن وقتی که میدونن که چون این موجودات عجیب و زشتی رو خواهند دید اما با اینکه خیلی آهسته صحبت کرد قول ماده حرف اون رو شنید و شروع به خندیدن کرد و گفت نه ترس تو هنوز زنده ای. شاید تا مدتی دیگه از زنده بودنت متاسف بشی من پریشیر هستم و تو تا آخر عمرت با من در قصرم که همین نزدیکیز خواهی بود پس راه بیفت اما ملکه از ترس عقب رفت و گفت بانوی شیر خواهش میکنم منو به قلم بازگردون هر بهایی رو که میخوای تعیین کن چون شوهرم هرچی که باشه خواهد پرداخت. اما قول ماده سرش رو به علامت مخالفت تکون داد و گفت من به قدر کافی ثروتمند هستم اما با این حال بیشتر وقتها ناراحت و غمگینم. فکر می کنم که بتونی کمی منو سرگرم کنی. با گفتن این حرف اون خودش رو به شکل یک شیر در آورد و در حالی که ملکه رو پشتش سوار کرده بود از ده هزار پلی که به قصرش می رسید پایین رفت. شیر که به مرکز زمین رسیده بود در مقابل خونه که با چراغ نورانی شده بود و کنار دریاچه از جیوه قرار داشت متوقف شد های عظیم و جسه که برای ملکه ناشناخته بودند داشتند در این دریاچه بازی یا نبرد میکردند و اطراف دریاچه زاغ و کلاقهایی پرواز میکردند که قارقار غمانگیزی سر داده بودند در ون دوردست کوهی قرار داشت که در دو طرف اون آب به آرامی جریان داشت و این آب اشک‌های عاشقان ناکام بود. در نزدیکی دروازه درختان بدون میوه و گلی رویده و گزنه و خار هم زمین رو پوشونده بود. اگر اون قلعه حزن‌آور بود، پس اینجا دیگه چه احساسی در ملکه به وجود می آورد؟ تا چند روز ملکه به قدری از اون چه برسرش اومده بود، ناراحت بود که با چشمهایی بسته دراز می‌کشید و قدرت اینکه حرکت کنه یا حرف بزنه نداشت. وقتی حالش بهتر شد پری بهش گفت که اگه دلش بخواد میتونه برای خودش آلونکی بسازه چون باید باقی عمر خودش رو اونجا سپری کنه ملکه با شنیدن این حرف به گریه افتاد و به زندانبان خودش التماس کرد که به جای محکوم کردن اون به چنین سرنوشتی اون رو بکشه اما پری فقط خندید و بهش توصیه کرد که سعی کنه خودش رو به همین چیزها راضی کنه چون ممکنه چیزهای ناگوار زیادی براش پیش بیاد دختر بیچاره با ناامیدی پرسید آیا هیچ راهی وجود نداره که بتونم دل تو رو به دست بیارم پریشیر گفت خب اگه واقعا میخوای منو خوشحال کنی باید خمیری از نیش زنبور برام درست کنی مطمئن باش که کار خوبیه ملکه در حالی که اطرافش رو نگاه میکرد جواب داد اما من که زنبوری در اینجا نمیبینم. شکنجهگر اون در مقابل گفت نه زنبوری نیست اما باید اون رو پیدا کنی و با گفتن این حرف از اونجا رفت. ملکه به خودش فکر کرد. آخه چه اهمیتی داره؟ من فقط یک جون دارم. نباید اون رو از دست بدم. اون بدون توجه به کاری که میکنه قصد رو ترک کرد و در زیر درختی نشست و عقده دلش رو خالی کرد و گریهکنان گفت: شوهر عزیزم، وقتی که به دنبال من به قلعه بیای و بفهمی که من رفتم، چه فکری می‌کنی؟ حتما فکر می‌کنی که مردم یا اینکه فکر می‌کنی فراموشت کردم؟ خوشبختانه اون سورتمه شکسته توی جنگله چون تو حتما فکر میکنی که جونورای وحشی منو دریدن و برام ماتم میگیری. شایدم کسی جای منو توی قلبت بگیره. خب دست کم هرگز اینو نخواهم فهمید. اگر صدای کلاقی رو بالای سر خودش نشنیده بود احتمالا مدتی تونانی به همین گری و زاری ادامه میداد. ملکه سرشو بلند کرد و در نور ضعیف کلاقی رو دید که غرباغی دورشتی رو برای شام خودش در بین پنجهاش گرفته ملکه شتابان از جا بلند شد و در حالی که با باد بزن خودش محکم به پنجهای پرنده میزد اون را مجبور کرد که غرباغه رو بندازه غرباغ نیمه جون بر زمین افتاد کلاق که از شدت ناامیدی عصبانی شده بود پرواز کرد و رفت عربوغه به محض اینکه به خودش اومد جست و خیز کنن پیش ملکه که هنوز زیر درخت نشسته بود رفت بعد در حالی که روی پاهای عقبی ایستاده بود تعظیمی مقابل ملکه کرد و به آرامی گفت بانوی زیبا چه چیزی باعث شده گزرد به اینجا بیفته؟ از وقتی که به واسطه یک کنجکاوی مرگبار به این مهر راه یافتم تو اولین موجودی هستی که میبینم کار نیکی انجام دادی ملکه گفت تو جور قرباقه هستی که زبون آدمیان رو میدونی؟ اما اگه میتونی خواهش میکنم به من بگو آیا من تنها زندانی اینجا هستم یا خیر؟ آخه تا به حال هیچ کس رو به غیر از های دریاچه ندیدم؟ قرباقه جواب داد روزی، روزگاری، زنان و مردانی مثل تو بودند، اما قدرت خودشون رو صرف تفریح خوشگزرانی میکردند. بنابراین سرنوشت مدتی اونها رو فرستاد تا به خاطر اعمال ناشایست خودشون مجازات بشن. ملک پرسید، اما تو رفی قرباقه مطمئنن جز این افراد شرور نیستی؟ مگه نه؟ قرباقه جواب داد، من تقریبا یک پری هستم. اما با وجود در اختیار داشتن موهبت‌های جادویی نمیتونم هر چیزی رو که دلم میخواد انجام بدم و اگه پری شیر از حضور من در قلمرو رو به خودش مطلع بشه فورا منو میخوشه. ملکه در حالی که از تعجب چینی به پشونش انداخته بود گفت اما اگه پری هستی چطور شد که نزدیک بود به دست کلاق کشته بشی؟ قرباقی گفت چون که راز قدرت من توی کلاه کوچیک همه که از برگ گل سرخ درست شده. اما وقتی که اون کلاه مخوف به من حمله کرد، لحظه کلاه هم رو کناری گذاشته بودم تا وقتی که رفت بر سرم بذارم. اون کلاه تا وقتی که بر سرم هست از هیچ چیزی ترس ندارم. اما باید تکرار کنم که اگه تو نبودی حتما مرده بودم. اگه میتونم کمکی به کنم یا سرنوشت رو تغییری بدم به من بگو. کشید گفت، افسوس. ری شیر به من دستور داده خمیری از نیش زنبور براش دروز کنم تا اونجا که من میبینم زنبوری اینجا وجود نداره و چطور وجود داشته باشه وقتی که گلی نیست که ازش تغذیه کنه و تازه اگر هم بود چطور میتونستم اونا رو بگیرم قورباغه گفت این کار کارو به من بسپار برات انجام میدم در حالی که صدای عجیبی از خودش درمی آورد سه بار با پاش به زمین ضربه زد در یک لحظه شش هزار قورباغه مقابل اون ظاهر شدن که یکی از اونها کلای کوچکی بر سر داشت. قورباغه در حالی که کلاهی رو که دوستش در دهان گرفته بود بر سر میگذاشت فرمان داد خودتون رو با اصل بپوشونید و به کنار کندوها برید. بعد صورتش رو به طرف ملکه کرد و گفت پریشیر مخزنی از زنبورها رو در مکانی مخفی پایین ده هزار پله‌ای که به دنیای بالایی میرسه نگهداری میکنه. اونها رو برای خودش نمیخواد. بلکه گاهی از اونها برای تنبیه قربانیانش استفاده میکنه. بر هر این دفعه ما اون رو به دردسر سر میندازیم. به محض اینکه این کلمات از دهانش بیرون اومد 6000 قورباغه برگشتند در حالی که به همه جای بدنشون اصل چسبیده بود. ملکی بیچاره با اینکه خیلی غمگین بود نتونست جلوی خندش رو بگیره. زنبورها همگی به قدری از خوردن اثرگير شده بودند که تمام نیشهاشون ریخته بود بدون اینکه آسیبی به اونها وارد کنه به همین خاطر ملکه با کمک دوستش خیلی زود خمیرش رو آماده کرد و اون رو پیش پریشیر برد. اول ماده که برای پنهان کردن حیرت خودش های بزرگی رو می‌بلعید گفت فلفلش کافی نیست خوب این بار در رفتی. خوشحالم که یک همراه باهوش‌تر از قبلی‌ها پیدا کردم. حالا بهتره بری و خونه برای خودت بسازی ملکه در اون اطراف گشت و در حال که تبر کوچکی رو برداشته بود به کمک دوستش قرباقه شروع به بریدن درختان صرف به همین منظور کرد از اونجایی که از این کار راضی نبود شیش هزار هم به کمکش اومدن و خیلی زود زیباترین این دنیا رو درست کردند و با سرخصهای خوشگیده که از بالای ده هزار پله آورده بودند، بستری در گوشه آلونک درست کردند. این بستر نرم و راحت به نظر می رسید و ملکه از خوابیدن روی اون خیلی خوشحال بود چون به خاطر اتفاقاتی که از صبح به بعد روی داده بود بسیار خسته بود بر به خواب رفته بود. خوابی که تازه عمیق شده بود که سرسیدا وحشتناکی از طرف هیوله های دریاچه بلند شد. در همین حال اجده کوچکی به داخل اومد و اون را به قدری وحشت زده کرد که فرار کرد. و این درست همون چیزی بود که اجدها میخواست ملکی بیچاره بقیه شب رو در زیر سخری کس کرد و صبح روز بعد که از کابوس های بیدار شد با دیدن غرباغ که اون رو نگاه میکرد خوشحال شد. قرباغ گفت باید جای دیگری برات بسازیم خب این دفعه دیگه انقدر نزدیک دریاچه نمیریم. اون با دهن بزرگ خندهدارش اونقدر لبخند زد تا ملکه دلگرم شد و با هم رفتن تا برای آلونک جدید چوب پیدا کنند کلبه کوچیک به زودی آماده شد و به از آویشن وحشی ساختند که عطر خوشی داشت ملک و غورباغی چیزی نگفتند اما گاهی همونطور که همیشه اتفاق میفته ماجرا برملا شد و خبر به گوشه پریشیر رسید و زاغی رو فرستاد تا گناهکار رو بیاره پریشیر با ععخم پرسید چه پریها یا آدمهایی از تو محافظت میکنند در این سرزمین که از باران مداوم گوگرد و آتش سوخته و چیزی سبز نمیشه با این حال شنیدم که بستر تو از گیاهان خوشبو ساخته شده به هر حال همونطور که میتونی برای خودت گل به دست بیاری حتما برای من هم میتونی باید در طول یک ساعت یک دسته گل از زیباترین و بهترین گلها به اتاقم بیاری وگرنه حالا میتونی بری ملکی بیچاره به قدری غمگین به خونش برگشت که قورباغه که انتظارشون رو فورا متوجه ناراحتی شد و لبخند زنان گفت چی شده ملکه جواب داد چطور میتونی بخندی این دفعه باید تگ یک ساعت گلی از کمیابترین گلها براش ببرم حالا از کجا اونارو به دست بیارم میدونم که اگه شکست بخورم منو میکشه بورباگ گفت خب ببینم میتونم کمکی بکنم یا نه تنها کسی که در اینجا باهاش دوست شدم یک خفاشه اون موجود خوبیه و همیشه هر کاری رو که بهش بگم انجام میده فقط کلا هم رو بهش قرض میدم اگر اون رو بر سرش بگذاره و به دنیایی بیرون پرواز کنه هرچی رو که میخوایم با خودش میاره. اما اون سریتر میره پس بهتره که خودم نرم و اونو بفرستیم ملکه اشکهاشو پاک کرد و با شکیبایی منتظر موند و قبل از اینکه یک ساعت به پایان برسه خفاش با زیباترین و خوشبوترین گلهایی که روی زمین سبز شد وارد شد ملکه از مشاهده این سحنه از شادی به هوا پرید و گلها رو شتابان به پریشیر رسوند اون هم به قدری شگفت زده شد که نتونست چیزی بگه حالا اتر و لطافت گلها ملکه رو بیاد خونش انداخته بود و به قورباقه گفت که اگه به هر ترتیبی فرار نکنه حتما میمیره قورباقه گفت بذار با کلا مشورت کنم اون کلاهش رو از سر برداشت اون رو در جعبه گذاشت و چند برگ علف سبز قدری شکوفه و دو عدد نخود که زیر پای راستش نگه داشته بود روی اون ریخت بعد در جعبه و بست و چند کلمه ای رو که ملکی متوجه اونها نشد زیر لب زمزمه کرد بعد از چند دقیقه صدایی از جبه بلند شد صدا گفت سرنوشتی که بر ما حکومت میکنه تو رو از ترک اینجا تا زمانی که بعضی کارها انجام بشه من میکنه اما در عوض هدیه‌ای به تو خواهد داد که آرامبخش تو در همه دردسرهات خواهد بود حق با این صدا بود چون چند روز بعد وقتی که قورباغه در آلونک رو زد زیبا ترین کودک دنیا رو دید که در کنار ملکه خوابیده با باشادی گفت پس حق با کلا بود چقدر گونههاش نرمه چه پاهای کوچیکی داره چی باید صداش کنی این موضوع بسیار مهم بود و نیاز به گفتگوی بیشتری داشت هزاران نام پیشنهاد شد و به هزار دلیل احمقانه رد شد یکی خیلی طولانی بود یکی خیلی کوتا یکی ناخوشایند بود و ملکه یاد کسی میافتاد که از اون خوشش نمی اومد. اما بالاخره فکری به سر ملکه زد فریاد کشید فهمیدم ما اونو مامفید صدا می کنیم. قورواغه در حالی که به هوا می پرید فریاد زد خودشه به این ترتیب این نام رو بر نادن. شاه خانم مافید تقریبا شش ماهی بود که قور متوجه شد ملکه دوباره غمگینه. یک روز که برای بازی با بچه که حالا چهار دست و پا می خذید اومده بود پرسید چرا از چشمات غم میباره. بازی اونها این بود که میذاشتن مافید تا نزدیکی قورباغه بخزه. بعد قورباغه به هوا میپرید و روی سر یا پشت یا پاهای بچه می نشست و باعث میشد که کودک فریادی از سر خوشی بکشه. هم بازی مثل قورباغه وجود نداشت، اما فقط یک پری قورباغه، و گرم ممکن بود به اون صدمه بزنه. قورباغه چهره غمگین ملکه رو بهانه کرد و لحظه‌ای اون رو راحت نذاشت. تا دلیل اندوه خودش رو بگه قورباغه به ملکه گفت نمیدونم از چه چیزی شکایت داری مافید که کاملا صحیح و سالمه و حتی پری هم وقتی اونو میبینه نسبت بهش مهربونه چی شده ملکه در حالی که دست‌هاش رو در هم قلقاب کرده بود گفت اگه فقط پدرش میتونست اونو ببینه یا اگه فقط میتونستم اون چرا که از زمان جدایی ما از هم اتفاق افتاده براش بگم اما خبر کالسکه که در هم شکسته رو براش بردن آیا اون تصور میکنه که من مردم یا اینکه جنورای وحشی تکوپارم کردم اگرچه مدت زمان طولانی برام عزاداری خواهد کرد و خب از این کار مطمئنم اما اون رو وادار میکنن همسری جوان و زیبا انتخاب کنه و اون وقت پادشاه من از یاد خواهد برد ملکه کاملا حق داشت با این تفاوت که 9 سال طول میکشید تا پادشاه رضایت بده کسی رو جایگزین ملکه کنن، غورباغه اون موقع چیزی نگفت اما دست از بازی کشید و بین درختان سرکس رفت اونجا نشست و فکر کرد و فکر کرد صبح روز بعد پیش ملکه رفت و گفت خانم اومدم پیشنهادی بکنم اجازه میدی به جایی تو پیش پادشاه برم و مصیبت رو براش بازگو کنم و بگم که صاحب زیباترین دختر دنیا شده راه درازه و من به کندی حرکت میکنم اما دیر یا زود خواهم رسید آیا نمی ترسی بدون حمایت من اینجا بمونی روی این موضوع خوب فکر کن این تو هستی که باید تصمیم بگیری ملک در حالی که دستهای درش رو بالا می آورد و مافیت رو هم وا داشته بود که به علامت قدردانی همون کار رو بکنه با شادی فریاد زد نیازی به فکر کردن نیست اما برای اینکه بدون تو از جانب من اومدی ای برش خواهم فرستاد ملک بازوش رو سوراخ کرد و با خون خودش چند ای در گوشه دستمالش نوشت بعد اون رو پاره کرد و دستمان رو به قرباقه داد و اونها با هم ودا کردند. یک سال و چهار روز طول کشید تا قورباغه از ده هزار پلیهی که به آلم بیرون راه داشت بالا بره و این به دلیل تلسم و جادوی پریه و جنس بود. وقتی که به بالای پله ها رسید به قدری خسته بود که مجبور شد یک سال دیگه هم توی ساحل به استراحت بپردازه و چیزهایی رو برای حضور در مقابل پادشاه تدارک ببینه. چون که اگه حضورش در دربار مناسب و باشکوه نباشه چه بلایی بر سر خودش و بر سر خیشاوندانش خواهد اومد. بالاخره بعد از مشورت‌های بسیار با کلاهش قضیه حل شد و در پایان سال دوم که از جدای اون و ملکه میگذشت، همگی راهی شدند. اول محافظانش که ملخ بودن حرکت میکردن. در پشت سر اونها ندیمهاش یعنی همون قورباغای کوچک سبزرنگی که توی دش می‌بینید، هر یک سوار حلزونی شده و روی یک زین مخملی نشسته بودند بعد نوبت به موشهای آبی رسید که لباس خدمتکاران را پوشیده بودند و در آخر خود قورباغه که روی تخت روانی نشسته بود که هش وزق اون رو می‌کشیدند و از جنس لاک لاک لاک‌پوش بود اون میتونست به راحتی روی تخت دراز بکشه و کلاهش رو روی سرش بذاره چون به قدر کافی بزرگ و جادار بود و وقتی که قورباغه روی اون نبود دو تخم به آسانی در اونجا می‌گرفت این سفر هفت سال طول کشید و در تمام این مدت ملکه تحت شکنجه بیم و امید بود اگرچه مافیت تا جایی که از دستش برمیومد سعی میکرد مادرش رو آروم کنه در واقع اگر پریشیر نمی نمیکرد که مادر و فرزند رو برای شکار با خودش به عالم بالا ببره ملکه به احتمال زیاد مرده بود با وجود تمام اندوها دیدن دوباره خورشید همیشه برای ملکه شادی بخش بود مافیت کوچولو که حالا هفت سال داشت بیشتر تیرهاش به هدف میخورد به این ترتیب سالهای انتظار سریتر از اونچه که ملکه انتظارش رو داشت گذشت. قرباقه همیشه مواصب بود به قار خودش را حفظ کنه و هیچ چیز اون رو وادار نکرد تا چهره خودش رو در محلهای عمومی یا حتی در مسیر جاده که احتمال برخورد با کسی وجود داشت نشون بده. اما گاهی وقتها، وقتی که گروه باید از نهری میگذشت یا از زمین باطلاقی عبور می کرد، دستور توقف داده می لباس‌های زیبا رو از تندر در افسارها را کنار میگذاشتند و ملخ‌ها، موش‌های آبی، حتی خود قورباغه یکی دو ساعتی را به خوشی به بازی در گلولای می‌پرداختند. اما بالاخره به پایان راه رسیدند و با مشاهده برج‌های قصر پادشاه، ها را از یاد بردند. یک روز صبح درخشان این کاروان با شکوه و جلال یک دسته سلطنتی از دروازه‌ها گذشتند. هرگز هیچ سفیری چون این و حگجان ایجاد نکرده بود. مردم توی درگاه خونه ها، در چارچوب پنجره ها حتی روی سخت خونه ها تجمع کرده بودند و صدای زندهباد اونها به گوش پادشاه رسید. با این حال پادشاه فرصت حضور در چنین مراسمی رو نداشت چون بعد از نه سال بالاخره به خواهش های درباریان رضایت داده بود و در آستانه برگزاری دومین جشن عروسی خودش بود. وقتی که تخت روان قورباغه به مقابل پله‌های قصر رسید، زرهان قلبش بالا رفت و در حالی که به جلو خم شده بود، یکی از محافظان رو که راهش رو سد کرده بود، منزد نزد خودش فرا خواند و گفت: میخوام پادشاه رو ببینم. سرباز جواب داد: پادشاه سر شلوغه و کسی رو نمیتونه ببینه. قورباغه در حالی که چشمهاش رو به اون اندوخته بود، گفت: اما پادشاه منو خواهد دید. مرد متوجه شد که به صورت غیر ارادی در حال هدایت کردن این گروه به تالار شرفیابی است پادشاه در حالی که نجیب زادگان در اطرافش جمع شده بودند سرگرم آماده کردن لباسهایی بود که هر کس باید در جشن عروسی بپوشه همگی با تعجب به این گروه خیره شده بودند و وقتی قورباغه از روی تخت روان به روی زمین پرید و بعد با جهیشی دیگه روی بازوی پادشاه جا گرفت تعجبشون بیشتر شد قورباغه شروع به صحبت کرد عالی جناب درست به موقع رسیدم اگه یک روز دیرتر اومده بودم شما عهدی رو که نه سال پیش با ملکه بستید شکسته بودید اگرچه همه حاضران انتظار داشتن پادشاه قورباغه رو به خاطر گستاخیش شدیدن از خودش برونه اما اون به نرمی جواب داد یاد ملکه همیشه برای من عزیز خواهد بود اما بان قورباغه بدان و آگاه باش که یک پادشاه خیلی کم میتونه به میل خودش رفتار کنه و مجبور به پیروی از خواستای زیر زیردستانشه من نه سال در مقابل اونها مقاومت کردم حالا دیگه نمیتونم چنین کنم و دوشیزه جوان و زیبایی رو برای همسری برگزیدم قورباغه در حالی که تکیه پاره شده از دستمال رو بیرون می گفت اون هر قدر هم که زیبا باشه شما نمیتونید باش عروسی کنید چون همسرتون ملکه هنوز زنده است و این نامه رو که با خون خودش نوشته براتون فرستاده از همه مهمتر اینکه شما یک دختر نه ساله دارید که از همه بچه های دنیا خوشگلتره با شنیدن این حرفها رنگ از روی پادشاه پرید و دستهاش دچار چنان لرزشی شد که به سختی میتونست نوشته ملکه رو بخونه بعد دو سه بار دستمال رو بوسید و به گریه افتاد و چند دقیقه طول کشید تا بتونه حرف بزنه وقتی که بالاخره تونست حرف بزنه به مشاورانش گفت که نوشته به به ملکه تعلق داره و حالا که مجرقی زنده بودن ملکه بهش رسیده روشنه که ازدواج دیگری در کار نخواهد بود این تصمیم سفیرانی رو که عروس رو به دربار آورده بودن ناراحت کرد و یکی از اونها با خشم به پادشاه گفت که با این کار و با حرف یک غباغه توهین بزرگی به شاهزاده خانم میکنه اون موجود کوچیک خشمین شده گفت من یک قرباقی معمولی نیستم و این رو به شما ثابت خواهم کرد. بعد کلاهش رو بر سر گذاشت و داد زد. پریانی که دوست من هستن اینجا بیان. در یک لحظه جمعیتی از موجودات زیبا که هر یک تاجی بر سر داشت مقابلش ظاهر شد. کسی نمیتونست حدس بزنه که اینها هل از اونها موشهای آبی و ملخهایی هستند که به عنوان همراه خودش انتخاب کرده بوده. با اشاره قرباقه پریان به حرکت در اومدن و تمام حاضران را شاد کردند. اما حالا دیگه جوانان و دوشیزگان نمی رقصیدند بلکه نوبت گلها بود. بعد اینها تبدیل به چشمه شدند که می و به صورت آبشا روی پله ها می و تشکیل رودخونه را رو اطراف قصر دادند که زیباترین ترین کوچک رنگارنگ رنگ و زرندود شده در اون به چشم می خورد. شاهزاد خانم که از دقایقی پیش برای دیدن این عجایب بازی خودش رو کنار گذاشته بود فریاد زد بیایید بریم قایق سواری وقتی که به طرف قایق ها رفت سفیرانی که مسئول مواظبت از جان اون بودن مجبور رفتن شدن شاید اگه میتونستن هرگز سوار قایقی نمیشدند. اما در لحظه که اونها و شاهزاده خانم روی پشتی های نرم نشستند رودخانه و قایق ها ناپدید شدند و همینطور شاهزاده خانم سفیران هم قیبشون زد. در عوض حل از اونها ملخ ها و موشهای آبی به شکل واقعی خودشون دور قربباغه رو گرفتند. قورباغه گفت شاید حالا جناب پادشاه متقاعد شده باشن که من یک پری هستم و حقیقت رو میگم. بنابراین بدون تلف کردن وقت دستوراتی برای اداره کشورتون بدید و به جستجوی همسرتون برید. این حلقه که شما رو نزد ملکه هدایت میکنه و نمیگذاره پری شیر آسیبی به شما برسونه. اگرچه اون مخوفترین موجودیه که تا به حال وجود داشته. در این زمان پادشاه شاهزاده خانم رو که فقط برای خوشحالی مردمش انتخاب کرده بود به کلی فراموش کرده بود و خیلی مشتاق بود که مطابق میل قورباغه آزم سفر بشه. اون یکی از وزیرانش رو به عنوان نایب السلطنه برای کشورش تعیین کرد و به قورباغه هر چی که دلش میخواست داد و در حالی که حلقه اهدای اون رو در انگوش کرده بود به سمت جنگل اسب سواری کرد. بعد از مدتی از اسبش پیاده شد و به حیوان گفت که به خونه برگرده و راهش رو پیاده ادامه داد از اونجایی که پادشاه اطلاعی از ورودی دنیای پایین نداشت مدت زمان طولانه اینجا و اونجا سرگردون شد تا اینکه یک روز وقتی که زیر درختی استراحت می صدایی شنید که میگفت وقتی که با پرسجو میتونی اون چیزی رو که دنبالش هستی به دست بیاری چرا بیهوده انقدر خودت رو به دردسر میندازی؟ چون به تنهایی هرگز راهی رو که تو رو به همسرت میرسونه پیدا نمی‌کنی. پادشاه با تشویش اطراف خودش رو نگاه کرد. نمیتونست چیزی ببینه و به طریقی وقتی که در مورد اون فکر کرد، به نظرش اومد که اون صدا بخشی از وجود خودشه. ناگهان چشماش به حلقه افتاده و فهمید. اون داد زد چقدر احمق بودم، چقدر وقت با ارزشم رو تلف کردم. حلقه عزیز به تو التماس میکنم همسر و دخترم رو به من نشون بدی. همونطور که حرف میزد تصاویری از یک شیر ماده بزرگ و به دنبال اون بانو و دوشیزی زیبایی که سوار بر اسبای سهرامیز بودند، پیش چشماش رجه رفت. پادشاه از شوق دیدار اونها تقریبا ضعف کرد و بعد لرزان بر زمین افتاد. اون گفت منو نزد اونها ببر. منو نزد اونها ببر. حلقه بهش گفت که جرأت داشته باشه و اون رو به محل سوتکوری که همسرش ده سال در اون زندگی کرده بود راهنمایی کرد. پریشیر قبلا از حضور پادشاه در سرزمین خودش مطلع شده بود و دستور داد تا قصری بلورین در وسط دریاچه جیوه بسازند و به خاطر دشوار کردن راه کاری کرد که اون قصر شناور باشه. بلافاصله بعد از بازگش از شکاری که پادشاه تصویر اون رو دیده بود، پریشیر ملکه و مافیت رو به اون قصر برد و اونها رو تحت حفاظت حیوله‌های دریاچه که همگی عاشق شاهزاده خانم شده بودند قرار داد. اونها خیلی حسود بودند و حاضر بودند به خاطر اون همدیگر را بخورند. به همین خاطر با کمال میل این وظیفه را پذیرفتند. بعضی از اونها دور قصر شناور مستقر بودند و بعضی در آستانه در نشسته بودند، در حالی که کوچکترین و سبکترین اونها روی سقف جا خوش کرده بود. البته پادشاه که از این تدارکات بیخبر بود با جسارت وارد قصر پری که منتظرش بود شد پری شیر دومش رو با خشم به زمین میکوبید و با قرشی که دیوارها لو ررزوند خودش رو بر روی پادشاه انداخت اما پادشاه مراقب بود و با شمشیرش پنجه شیر رو که برای کشتنش جلو اومده بود برید پریشیر شیر عقب افتاد و پادشاه در حالی که کلاه خود به سر داشت و سپرش رو بالا گرفته بود پاش رو بر روی گلوی شیر نهاد و گفت همسر و فرزندم رو به من پس بده و گرنه تو را خواهم کشت اما پریشیر پاسخ داد از پنجره به اون دریاچه نگاه کن و ببین آیا میتونم اونا رو به تو بدم یا نه پادشا نگاه کرد و از بین دیوارهای بلورین همسر و دخترش رو شناور روی جیوه دید با مشاهده اون صحنه پریشیر و بر هاش رو کاملا از یاد برد در حالی که کلاه خودش رو در میآورد با تمام توانش به سمت اونها فریاد زد ملکه صدای اون رو میشناخت اون و مافیت به طرف پنجره دویدن و دست دادن بعد پادشاه عهد بست که به قیمت جونش هم که شده هرگز اونها رو اونجا تنها نگذاره و بر سر قولش هم بود. اگرچه در اون لحظه نمیدونست چه عهدی با خودش بسته. سه سال گذشت. پادشاه هنوز به مراد دلش نرسیده بود. اون هر نوع سختی رو که بشه تصور کرد تجربه کرده بود. بسترش از گزنه و غذاش از میوههای وحشی تلختر از زهر مار بود و روزهاش به نبرد با های زش رو که مانع نزدیکی اون به قصر میشدن میگذشت اما با این حال هنوز یک قدم هم پیش نرفته و به پیروزی ای هم دست نیافته بود حالا اون تقریبا ناامید بود و آماده رویارویی با هر چیزی و انداختن خودش به درون دریاچه در این ایام تیر روزی شبی یک اجدها که مدتها بود پادشاه را از سقف تماشا می کرد به کنارش اومد و گفت تو فکر کردی که عشق همه موانه رو از بین بر برمی‌داره اما دیدی که نشد ولی اگه به تاج و تخت خودت سوگند بخوری که هر وقت که خواستم شامی از غذاهایی که هرگز دلم رو نزنه به من بدی میگزارم که به همسر و دخترت برسی پادشاه شیندن این حرف انقدر شاد شد که برای در آغوش گرفتن همسر و فرزندش حاضر بود هر سوگندی بخوره اون با شادمانی هر چیزی رو که اژدها ازش خواست قبول کرد بعد پشت هیولا سوار شد اما بر حسب اتفاق نزدیکترین حیوله ها بیدار شدند و صدای حرف زدن اونها رو شنیدند و برای مقابله با پادشاه به ساحل شنا کردند و اونها مشغول نبرد شدند نبرد طولانی و دشوار بود وقتی که بالاخره پادشاه دشمنانش رو شکست داد جنگ دیگری در انتظارش بود در ورودی قصر خفاش ها, جغد ها و کلاغای غولاسایی از همه طرف به سمتش هجوم آوردند اما اجدها با دندونها و چنگالهاش مقابل اونها ایستاد و ملکه ها را به صورت قطعات ریزی شکست و برای کمک به شوهرش اونها را مثل دشنه در بدن دشمنان فرو کرد. بالاخره موجودات خوفناک فرار کردند. صدای رعداسا بلند شد و قصر و حیوله ها ناپدید شدند. و در همون موقع به طوری که هیچ کس از دلیل اون آگاه نشد، پادشاه خودش رو در کنار همسر و دخترش در خونه خودش پیدا کرد اجدهها همراه با سایر حیوله ها ناپدید شده بود و تا چند سال کسی چیزی از اون نشنید مافید روز به روز زیباتر میشد وقتی که 14 ساله بود پادشاه ها و امپراتوران کشورهای همسایه اون رو برای خودشون یا پسرانشون خاستکاری کردند دخترک تا مدتی به این درخواست ها بود اما بالاخره شاهزاده جوونی که ویژگی های بیشماری داشت دلش رو ربود و اگرچه پادشاه مافیت رو در انتخاب همسر آزاد گذاشته بود اما در دل امید داشت که از بین همه اون خواستگاران این یکی دامادش بشه به این ترتیب اونها همون روز با شکوه و جلال فرابان با همدیگه نامزد شدند و بعد شاهزاده در میان اشک و ناله های زیاد در حالی که عکسی از مافیت رو همراه داشت راهی دیار پدرش شد با وجود تلاشهای بسیاری که مافیت برای سرگرم کردن خودش و جلوگیری از غمگین کردن دیگران با شکایت های خودش میکرد روزها به کندی سپری میشدند یک روز صبح اون در حال نواختن چنگ خود در اتاق ملکه بود که پادشاه شتابان وارد اتاق شد و با نیرویی که تقریبا مافیت رو ترسوند بازی اون رو گرفت و به محض اینکه تونست حرف به فریاد زد فرزندم فرزنده عزیزم اصلا چرا تو به دنیا اومدی مافید در حالی که رنگ ازوش پریده بود و میلرزید منمن کنان گفت آیا شاهزاده مرده؟ پادشاه جواب داد نه نه اما چطور میتونم به تو بگم؟ بعد به روی پشتی ها افتاد و همسر و دخترش کنارش زانو زدن. بالاخره تونست ماجرا رو تعریف کنه و چه داستان وحشتناکی بود. حیولای عظیم و جسهی به عنوان فرستاده از طرف اجده هایی که به کمک اون پادشاه ملکه و مافیت رو از قصر بلورین نجات داده بود به دربار اومده بود اجدها طی چند سال گذشته بسیار درگیر بود و کاملا شاهزاده خانوم رو از یاد برده بود تا اینکه خبر نامزدی اون به گوشش رسید و بعد اجدها به یاد ای افتاد که با پدر مافیت کرده بود و هر که بیشتر از مافیت میشنید مطمئن‌تر میشد که اون باید غذای خوشمزه‌ای باشه و همین خاطر به هیولایی که نوکرش بود دستور داد فورا مافیت رو براش ببره هیچ واژه نمیتونست وحشت ملکه و شاهزاده خانم را از شدن این سر نوشت ترسناک بیان کنه. اونها فوراً به تالار رفتن هیولا اونجا منتظرشون بود و اونها در حالی که خودشون رو به روی پای اون انداخته بودن التماس کردند که اگه میخواد کشور را برای خودش بگیره اما دست از سر شاهزاده خانم برداره. هیولا با مهربونی به اونها نگاه کرد چون اصلا سنگدل نبود اما گفت که قدرت انجام کاری رو نداره، و اینکه اگه شاهزاده خانم بدون سر و صدا همراه اون نره اجدا خودش میاد و اونو با خودش میبره چند روز گذشت و پادشاه و ملکه از هیولا که از انتظار خسته شده بودند خواهش کرد کمکشون کنه عاقبت هیولا گفت تنها یک را برای کمک کردن به شما وجود داره و اون اینکه شاهزاده خانم با برادر زادن که علاوه بر اینکه جوان و زیباز دستی هم در سیح و جادو داره ازدواج کنه چون اون میدونه که چطور شاهزاده خانم رو از دسترس ها دور نگه داره. والدین در حالی که دستهای بزرگ هیولا رو میفشوردن، داد زدن ممنون، ممنون، تو واقعا باری رو از روی دوش ما برداشتی. نیمی از این سرزمین جایزه شاهزاده خانم خواهد بود. اما مافید بلند شد و اونها رو کنار زد و با غرور گفت: من زندگیم رو به بهای بیوفایی نخواهم خرید و همکنون همراه تو به لونه اصفهان میام. اشقا و التماسای پدر و مادرش مانع رفتن اون نشدند. صبح روز بعد مافیت رو سوار تخت روون کردند و در حالی که هیولا اون رو محافظت می‌کرد، همراه با پادشاه و ملکه و ها که گریه می‌کردند، عازم دامنی یکو که قصر اجدها در اون قرار داشتند. اگرچه راهنا هموار و سنگ لاخ بود، اما کاملا کوتاه به نظر میرسید وقتی که به محلی رسیدند که اصفهان تعیین کرده بود، هیولا به مردایی که تخت روان را رو حمل می‌کردند دستور داد توقف کنند اون گفت زمان خداحافظی با دخترتون رسیده چون میبینم که اجدها به این طرف میاد حقیقت داشت ابری روی خورشید رو پوشون چون اونها بین خود و خورشید هیکل عظیمی رو تشخیص دادن که نیم کیلومتر طول داشت و به اونها نزدیک و نزدیکتر میشد پادشاه نمیتونست باور کنه که این همون جونور کوچیکیه که رفتار دوستانی در ساحل دریاچه جیوه داشته اما این خود اجدها بود که به کمک شش بال خودش به سرعت جلو میومد. و با توجه به وزن زیاد و طول دومش بسیار عظیم وجسته بود بله اون به سرعت میومد اما قورباغه که سوار بر سگ تازی بود و کلاهش و بر سر داشت سریعتر از اون بود قورباغه در حالی که وارد اتاقی که شاهزاده در اون نشسته و به تصویر نامزدش خیره شده بود میشد فریاد زد وقتی که خطر جون شاهزاده خانم رو تهدید میکنه چرا اینجا وقتت رو بتالت میگذرونی در حیات اسب سبزرنگی رو پیدا میکنه که سه سر و دوازده پا داره و به پهلوش شمشیر بسیار بلندی آویخته شده عجله کن، مبادا دیر برسید نبرد تمام روز طول کشید و قدرت شاهزاده تقریبا تمام شده بود که اجدها فکر میکرد پیروز شده دهانش را باز کرد تا نعرهی پیروزی سر بده شاهزاده فرصت رو قنیمت شمرد و قبل از اینکه دشمن دهان خودش رو دوباره ببنده شمشیر رو در گلوی حریف فرو کرد با ناامیدی پنجه هاشو بر زمین کشید حرکت آرومی به بالهای بزرگ خودش داد و بعد به پهلو افتاد و دیگه تکون نخورد. مافیت نجات پیدا کرد بعد از اون همگی به قصر برگشتند جشن عروسی روز بعد انجام شد مافیت و شوهرش بعد از اون با شادکامی زندگی کردند سفر به دنیای پر رمز و راز ها